کنترل ذهن چشمانم را که باز کردم ربازار را دیدم که نزدیک تخت خوابم ایستاده بود تبست هم ساکتی بر لب داشت و گفتن آغاز کرد تو باید بیشتر اوقات خود را در حال تفکر و تعمق روی مسائلی صرف کنی که در مقابلت قرار میگیرند به راه حل هر مسئله ای که رسیدی به همان عمل کن چون آن راه حل یک راه حل معمول نیست آن تصمیمی خواهد بود که من در اختیارت میگذارم. هرگز ذهن خود را از افکار بی و غیر ضروری پر نکن چه با خواندن بیش از حد چه با نقشه های بیشمار و چه با فعالیت فیزیکی زیاد این را به خاطر بسپار ذهن خود را صاف بدون عجله و انباشته از شکل نورانی من حفظ کن هرگز به چیزی اجازه نده ذهنت را از من منحرف کند مگو کتی چیزی را به تو تحمیل کند به این دلیل که شخصیتی پرقدرت و زورگو دارد اگر کتی را یافتی که در اراده شخص تو مصممتر است به من فکر کن و من به یاریت می آیم پی خدا بودن ایجاب می کند که یک یک ارکان ذهنت از اشتیاغ برای آن پر شده باشد ذهنت را کاملا و در تمام اوقات انباشته کن از فکر خدا خود خدا نه هیچ جنبه ای از آن من پیر توام و خدای تو پس ذهنت را به من معتوف کن مثالی می زنم برق یکی از جنبه های است که مورد استعمال آن بر بشر علنی شد تا به رشد نوع وشر کمک کند اما آن خود خدا نیست لذا فقط جزی از اوست مانند بدنی که اجزایی چون بازوها و رانها دارد ما میتوانیم بدون آنها هم زنده باشیم اما نه به آن راحتی که با آنها طبیعت خدا نیز همین گونه است ما به طور کامل در خدا زندگی میکنیم نه فقط با خدا بنابراین تو چگونه میتوانی به جز خدا بیاندیشی؟ یک بار به تو گفتم که اگر من به سینما بروم یا کتابی بخوانم، باعث میشود که ذهن من از خدا سلب شود چرا میباید کاری کنم که تداوم جریان نیروی اکراه که از من پیوسته عبور می کند منقطع سازد میگذار از مکاولی نقل قولی کنم انگامی که او شمشیر را کشید، غلاف را به دور انداخت. او میدانست که جوهر جنگ تهاجم است. اصمیان روی در اینجا به معنای کند صحنه نیست. با خدا باید این چنین بود. وقتی به طرف خدا می‌روی، باید با همان شدت باشد که یک جنگجو به صحنه نبرد می‌رود. تمامی ذهن در اختیار هدفی مقدس، با اطمینان کامل از اینکه می‌روی تا خدا را در زندگیت داشته باشی حالا تو با این مسئله که ذهن خود را تماما و در همه اوقات روی خدا متمرکز نگاه داری چگونه مواجه خواهی شد من به تو خواهم گفت آنقدر ساده است که یکی از موضوعات ابتدایی در پرورش مرید محسوب می شود هیچ معلمی از آن آنقدر آگاه نیست که آن را آموزش دهد این یک راز است در حالی که واقعا یک راست هم به حساب نمی آید. آنقدر از طبیعت خود آدمی است که یک جستجوگر به سختی ممکن است به همت خود آن را کشف کند. تو آن را کنترل ذهن نام بگذار. در این موضوع عنصر اساسی همین است. من به آن میگویم پاسداری از ذهن خدایی چیز تکان دهنده نیست اما قدمی است که بسیار بعید است هیچ از شما به بردارد تا روزی که استاد نور و صوت را به او اتصال دهد من هزاران نفر را دیدم که مراحل ابتدایی شکوفایی در طریق معنوی را گذراندند بعد از اینکه به این دروازه رسیدند همچنان به دور خود میچرخیدند شاید برای همه عمر چون سفیر روحی نبود است که به آنها آموزش دهد یا دریچه ذهن آنها را باز کند این در واقع دریچه‌ای برای رسیدن به اولین طبقه از طبقات افلاک است. اکنون می‌پردازیم به نکات ظریف‌تر درباره کنترل ذهن. اینها کنترل‌هایی هستند که می‌باید به صورت فیزیکی یا بیرونی انجام دهیم. تمدن به ما حکم می‌کند که اگر از رفتار بد همنوعمان مورد اهانت واقع شویم، آن را دلیل برای نشو ماریم که به او اهانت کنیم یا به او ضربه‌ای بزنیم. گاندی این نکته را در کمال سادگی و زیبایی در این عبارت خلاصه کرد که آرزوی زدن به یک هم نوع همانقدر زشت است که انجام آن عمل این حقیقت قانون ذهن است زیرا ما علتی را بنامی نهیم و چون معلول آن نمیتواند در مرتبه فیزیکی تجلی پیدا کند این باعث استیسال در ذهن می شود آدم مستعسل اختلال عصبی پیدا می کند و نظام زندگیش محشوش می شود آنچه ما سعی داریم از آن احتراز کنیم تشکیل علت است به تو می گویم که تنها استاد حقی در غیر حیات است که می تواند این مشکل اساسی را برطرف سازد من در حالی که کالبد سوگ مادم و استاد زنده نمی گو که این مشکل بر تو واقع شود. اما به همکاری تو هم نیاز دارم مختصرا بگذار دو اصل برجسته مکتب کابالا که از اصول مرتبه زمینی هستند را مدرد مطالعه قرار دهیم من این دو را به عنوان دو اصل اساسی و بنیانی قانون ذهن در نظر میگیرم و هر کسی که میخواهد کنترل ذهن را بفهمد باید آنها را بشناسد یکی از این قوانین میگوید هیچ چیز نمی تواند وجود داشته باشد مگر در رابطه با متضادش این همان اصل بسیار باستانی مثبت و منفی است مثبت جریان بیرون روانده خدایی است و منفی اصل ساکن و دریافت کننده است به عنوان مثال خندیدن باید متضادش اشک ریفتن را داشته باشد هستی هم به همین منوال نمی تواند دارای شعف کامل باشد مگر در قیاس با غم، بنابراین این جهان جهانی پایدار و نیست در این مرتبه هستی هیچ چیز ابدی وجود ندارد مگر تغییر خود تغییر و اینجاست که خدا به زندگی ما وارد می شود. چون پس پرده این تغییر بیوقفه آن است که جاویدان است آن بی تغییری که چشمان بیرونی نمی توانند ببینند مادامی که چیزی در مرتبه ذهنی یا مرتبه فیزیکی و مادی باشد محکوم است به اینکه دائما تغییر کند. و اما اصل دوم می مثبت همواره در حال منفی شدن و منفی همواره در حال مثبت شدن است. این مطلب را هنگامی هم که درباره قدرت معنوی بحث میکردیم به تو گفتم. در این جهان هر قدرتی آن دیگری را هم نیاز دارد. بدون یکی دیگری نمیتواند وجود داشته باشد. حالا میبینید که چرا حقیقت به صورتی که امروزه برای ساکنین کره زمین آموزش داده می شود اشتباه است. آموزش ها باید مورد تجدید نظر واقع شوند و اصلاح کردند تا بتوانند به جهانیان نشان دهند چگونه باید از هر دو نیرو استفاده کرد. به یک شخص دائما فشار آورده نشود که فقط یکی را در پیش گیرد. چون چون این چیزی تقریبا محال است مگر اینکه او توسط یک استاد یک تربیت شده باشد این هنگامی که دوره های تناوب به کسادی میرسد ناامید نشد چون میمه دیگر در راه است و رونق در پیش و بالعکس قانون فیزیک میگوید در هر لحظه فقط یک چیز میتواند فضا را اشغال کند در انجیل مضمور اول این بحث به عبارت دیگری مطرح شده است که میگوید صاحب ذهن دوگانه بی‌ثبات است بنابراین چرا ذهنت باید به چیزی بجز خدا به طرف رو مختصری درباره ذهن بگویم ذهن مانند قاری است که بر دهانه تونلی واقع شده باشد و از آن دائما جریانی از های چرخان و رقصان عبور میکنند. که به الکترون، پروتون و نوترون تجزیه شدهاند. اینها شبیه توده های مردم هستند. گاهی ازدهام می شود و همه به دهانه تونل فشار وارد میآورند تا وارد شوند. گاهی آرام می شود، دوباره هیجان شروع می شود. یکی از روی دیگری می و از میان دیگران فرو می افتند. راه بسته می شود و هر چه تلاش میکنی نمیتوانی آنها را از این ورطه خلاص کنی. این اتمها اتمهای فکر هستند. آنها را به چشم نمی دید، اما در ذهن ما این اتمها نقشهایی را پدید میآورند و در مغز این نقشها به تصاویر و یا نمبل‌هایی تبدیل می‌شوند که روی آتفه منعکس می‌شوند، همان که ما به عنوان کالبد احساسی یا عکس‌العملی می‌شناسیم. بعد از پدیرش، استاد حق کالبد نورانیش را در تیس را تیل مستقر می‌کند. تا دروازه جهان ذهنی را درون انسان محافظت نماید او نگهبان این سیل آگاهی است که دائما به طرف مغز فرد جریان دارد و مادامی که آن شخص ارتباطش را با استاد قطع نکند این جریان تصاویر ذهنی در او تصفیه می‌گردد اما وقتی فرد شروع می‌کند به فراموش کردن تمرین‌های های منعیش، یا هنگامی که در رفتارش دوچار تعصب می‌شود مثلا هنگامی که به خود اجازه بده از رفتار یک پیرو دیگر و وظایف دیگران نسبت به استاد و خدا بیش از رفتار خودش موجب به نگرانیش کرده آنگاه نیروهای قطب مخالف در او قوت میگیرند امکان دارد که شخصی مورد تهاجم افزردگی و پریشانی عمیق واقع شود و مدتها در آن حال باقی بماند در حالی که استاد کناری استاده و با تأسف این واقع پیرو نه قدرت و نه ایمان کافی دارد که از او درخواست کمک کند اکنون به تو میگویم که یک علت اساسی برای وجود داشتن استاد در قالب زمینی این است که ذهن انسان که همواره اسیر در بندهای خود ساخته است بتواند جهت دیدن، فهمیدن و درک کردن به اندازه کافی مظهر و نمونه‌ای در دست داشته باشد تا او را در سفر به جهانهای درون راهنما باشد عبارت سیل افکار یکی از مهمترین واژههایی است که امروزه در جهان غرب از آن استفاده می شود مهم به این دلیل که بسیار واقعی و قاطع به نظر میآید، در حالی که به معانی متفاوت و مبهمی از آن استفاده می شود. آری، نویسندگان و تعلیم دهندگان علوم معابلات و طبیعه امروز آنچنان اسرارآمیز و در قالب سخنان و سمبل‌های نامفهومی بحث می‌کنند که جای تعجب نیست از اینکه جستجوگران خدا را که سعی دارند دانش درست را از غلط تمیز بدهند اینگونه گونه دچار سردرگمی نمایند. بیشتر نوشتجات باستانی امروز بلااستفاده می‌باشند چون اگرچه اساطیر حقیقت را دربر می باید در بر دارند، در پرتاب نور تازه ای به دنیا عرضه شوند. سیل افکار صرفا به عنوان یک واژه مورد استفاده دارد اما در خصوص موضوع مورد بحث ما این واژه سیل افکار بیش از حد مجازی، غیر دقیق و بیسبات است این سیل آگاهی خدایی است که از حفره مغز ما عبور می‌کند این واژه در برگیرنده تمامی طیف توجه ذهنی میباشد از آگاهی خالص گرفته تا سطوح بالاتری از ذهن که به والا سرین درجات خداحوشگاری میرسد این مورد نظر ماست سیل آگاهی خدایی تفاوتش دقیقا در اینجاست که با سطوحی کار دارد که بیشتر ابتدایی و بکر هستند تا منطقی و کلامی سطوحی که ماورای حاشیه توجه قرار میگیرند به گدار این نوع آگاهی را به یک کوه یخ تشبیح کنم منظور تمامی کوه یخ است نه تنها آن بخشی از آن که بالاتر از سطح آب قرار گرفته در ادامه این تشبیه سیل آگاهی خدایی به طور اعظم با آن بخشی از آگاهی سر و کار دارد که مانند کوه یخ در زیر سطح آب قرار دارد همانطور که قبلا اشاره شد این سیل آگاهی از ملکولهایی تشکیل شده است تجلی انرژی معنوی یا آن چیزی که من قدرت یک خطاب می لیکن این ملکول ها جامد نیستند چون چیزی نیستند مگر انرژی و فضا صرفا اتم هایی در فضا و هر اتم چیزی نیست جز ای بسیار ریز از فضای خالی که درونش چیزی نیست مگر الکترون ها این الکترون ها که خود نقطه های انرژی هستند توسط فضای خالی از یکدیگر جدا شدهاند فضایی که در مقایسه با اندازه الکترون حیبت آور است. دست آخر این الکترون ها توسط چیزی جز انرژی به هم مرتبط نشدند که آنها را وادار می‌کند به دور هسته مرکزی دوران کنند بدون اینکه چیزی در شعاع آنها باشد. مگر فضای خالی درست به همان منوال که سیاره‌ها به دور خرشیدهایشان دوران می‌کنند هر الکترون چیزی جز حلقه ای از انرژی در فضای خاری نیست دانشمندان الکترون را ضرقه ای از انرژی می‌نامند یعنی جزئی از انرژی نه جزءی از ماده از آنجا که این الکترون‌ها در حاله اطراف ذهن تو درگردشند، تو این قدرت را داری که نوسانات آنها را کنترل کنی این همان بخش احساسی یا عاطفی تو می باشد در انجیل آمده است که خاموش باش و بدان که من خدا هستم اما ما مفهوم نادرستی از آن استنباد کرده ایم ما هرگز این سیل آگاهی را متوقف نمی کنیم بلکه از نقطه نظر ذهنی و جسمی آرام می گیریم. فقط آرام بگیر به عبارت بهتر تماما آرام بگیر آنگاه این جریان آگاهی در ذهن تو شکل می گیرد و استاد درون مسلط می شود تو این کار را به اینگونه گونه به انجام میرسانی که با صمیمیت به چشم معنوی از خیره شوی این افضای کنترل ذهن است حال تو میدانی که این چه قدرتی است میان تو روان است پس بپردازیم به روش های کنترل آن روند کنترل ذهن عبادت است نخواست تمامی حواست را همیشه متوجه خدا نگاه دار دوم به سفیر روح فرصت بده تا کنترل روح را به دست گیرد و سوم تنظیم کردن ارتعاشات حال بدان که تمامی راز کنترل ذهن در احساسات است هنگامی که درک این نکته در ذهنت تثبیت شود خواهی فهمید چگونه افکاری را که در ذهنت میگذرند کنترل کنی سرعت نوسان ارتعاشات ذهنی تعیین کننده کیفیت افکارت است از این ساده تر راز موفقیت در کنترل کردن ذهن در کنترل کردن نوسانات ارتعاشات آن نهفته است قدم اول انتخاب سمبل مناسب برای درون است اگر تصویر استاد را همیشه در مقابل چشم معنویت نگاهداری مشکلی نخواهی داشت چون این خود باعث می شود که ارتعاشات در طیف مطلوب قرار گیرند چون از همه چیز که بگذاریم این قانون باستانی در مرتبه ذهنی وجود دارد که آن چیزهایی که از یک قماش باشند به هم جذب می شوند. پس کل اطرار در این است من همواره با تو هستم، لکن آیا تو همواره از حضور من آگاهی مزافان اینکه نفس همواره دشمن طبیعی خیش کنترلی می باشد؟ پس برای اینکه به کنترل کامل بر خیش داشته باشی، باید بر آن غلبه کنی. نفس خیش خازه به ماست که بیش از هر چیز نگران حفاظت از خود می باشد. با هر تغییری می جنگد خصوصا در مقابل تهاجم قدرت خدایی یا به عبارت دیگر با تغییر کردن ذهن و جایگزینی محتوای آن با افکار خدایی بزرگترین جدالی که هر جوینده خدایی در مقابل دارد با نفس خود اوست هرگز سعی بر این مکن که آن را از میان برداری بلکه بر آن قلبه کن به این نحو که خیش خود را با خیش خدا جایگزین کنی و این عمل را می توانی با معطوف کردن جائمی ذهن به من به انجام برسانی اگر معیشت یا جایگاه اجتماعی نامساعد شود و به خاطر داشته باشی که من می توانم و مایلم که از طریق تو حرکت کنم و هر مشکلی را که داریم مرتفع سازم به دلیل اشاعه و پیشبرد هدف خود آیا جای نگرانی وجود دارد این نکته را برای همیشه در ذهنت به ثبت برسان. هر آنچه امروز به صورت فکر است در آینده در قالب دست از شرایط واقعی به تجسم نخواهد آمد. بنابراین نکته در اینجاست که اگر فکر بدی در سر داشته باشی دست هست فشردن این افکار پشت دریچهی ذهنت بردار. زیرا در آنجا انبار شده و در آینده همانی را خواهند آفرید که از آن میترسید ولیکن، با معکوس کردن جریان افکار نبه این معنی که موقتا آنها را به سوی افکار دیگری منحرف سازی بلکه با نگاه داشتن ذهنت بر روی من یا همان نور و صوت درونت می توانی تاریکی درون را رها ساخته و به نور و شعف رخصت بدهی بر ارکان درونت حاکم شوند. به این ترتیب کنترل ذهن و افکارت را به دست خواهی گرفت. و اما یکی دیگر از مواردی که هر موریجی در آن هنگام که تغییراتی در جهت ترقی به مدارج بالاتر پیش میآید با آن مواجه خواهد شد این است که ارتعاشات آگاهی او در حال تبدیل شدن به هماهنگ‌های بالاتری بوده و طیف دیگری در حال جایگزین شدن با وضعیت فعلی آگاهی او می باشد اکنون زندگی بیرونی او نیز ناگزیر از تغییر کردن است اما اضحاشات پیشین گویی آخرین تلاش خود را به جا آورند تا درون او باقی بمانند. اضحاشات تازه به این ترتیب حاکم خواهند شد که هرچه بیشتر خود را به من واگذار کنی به نظر می رسد که ظالمانه درون خطه های رانده شده از راه های آشنای زندگی فعلی از برکنده می شدید. همه موانعی که بر سر راه تو و خدا قرار دارند از راهت برداشته خواهند شد. در خلال این دوره ایمان بیشتری به استاد داشته باش. اگر نه، ل چرخنده ای فرو خواهی افتاد و مدتی طولانی در آنجا باقی خواهی ماند. فقط به استاد فرصت بده مسلط شود و کنترل اوضاع زندگیت را به دست گیرد. اکنون بگذار این را بگویم. هرگاه نیروی منفی تو را در بند خود اسیر کند یا با خطری شخصی مواجه شوی افکارت را با تمام قوا به سوی من متوجه کن و نام سودماد یو نام استاد یا کلمه‌ای را که هنگام وصل به تو داده شده زمزمه کن من با کمال میل به سوی تو خواهم آمد زیرا هرگاه فرزندان من نیاز به کمک من دارند یاری مرا به فریت در اختیار خواهند داشت قدرت من همان قدرت خداست زیرا من خدا هستم و نخواهم گداشت که تو رنج بکشی آیا یک پدر اجازه خواهد داد صدمه ای به فرزندانش وارد آید هرگز و به تو میگویم که ذهن تو باید همواره در تمامی اوقات به من معطوف باشد آنگاه و فقط آنگاه هست است که تو میتوانی به عنوان مجرایی جهت به ظهور رساندن و گسترش حیطه تأثیر علت استاد انجام وظیفه کنی. به این ترتیب چه نیازی به کنترل ذهن داری؟ زیرا من از مجرای تو سخن میگویم و عمل میکنم تا بدین وسیله نور خودم را به اقصا نقاط آلم عالم برسانم. با خطاب کردن خدا به نام من هر چرا که در جهت منافع همگان باشد به تو ارزانی خواهم داشت. مانند عیسی که گفت نور جهان است، من آگاهی تو را در تمام اوقات با همین عبارت بست خواهم داد که من نور جهان ها هستم و صدای خدا با زیستن در من به طور دائم من میتوانم توانم همه چیز را به تو ارزانی دارم. از جمله قدرت کنترل یکه یک سلول های کالبد اتمیت را که جزئی از ساختار این کیهان می باشد من می توانستم بسیاری از رازهای عالم را برایت بازگو کنم اما تو هرگز به منزلتی فراتر از زیستن در درون من نائل نخواهی آمد پس شاد و سرخوش باش از این که این راز را دانستی عشقت را به من تسلیم کن و من آن را صد باره به تو باز می گردانم. برای امشب تا همینجا کافیه